مرغ منجمه چطور است؟ پرهیز کنید از مرغ منجمه اما حلال و حرامش نمیگم حرام هست چون که حلال بعضی از گفتن حلال هست اما چرا پرهیز کنید؟ چون نه هنگام زیب این مرغ ها تا مشکل هست مشکل اول این است که هنگامی که مرغ رو زیب میکنن اول گاگای سرش تکام میده از محلی که بعد کشتی میشه کشتی نمیشه اما بدتر از این اینو بدونی به که محض که در خود این هایی که مرغ ذح میکنن مرغ ذح شده رو در دمای آ 70 درجه میبرن تا برکنده میشه برای چندن های در دمای 70 درجه میبرن به محض در دمای 70 درجه رفت اون محتویات شکم مرغ به گوشت سرایت میکنه برمیگرده اگر گوشت کلا آلوده میشه آلوده با کسبه میشه اگر به این صورت شد حالا خوردن مرغ هم محل تعمل هست چون در دا حدیث دارین که مرغ های جلاله نخوری. جلاله چلی میگن این مرغ های بازارگرد که کسافت میخوره، بعد عرقش بو میده بعضی مرغ های که کوچه ها میگردن بو میدن اگر مرغی بوداد یا گوسفندی بوداد یا به اصلاقاوی بو میداد از عرقش بوداد بگی اونو نگه دار تا چند روزی علوفه پاک بشوده دوباره بوی پاک وقتی اومد. اون وقت اونو بخور. حالا این مرغ های خوامی خوری حالا کل اینها این ویسلار نگاه کنی کار کنها همی کار میکنن مرزه میشه در دما هفته در داخل آب برده میشه کل موته بر جذب پوس میشن اینها مشکلند برای سلامتی شما هم مشکل اینها نه